برای رسیدن به یک مقامات والای سیر الله صبر لازمه صبر به معانی مختلفش مثلا لازم میشه گاهی آدم قدرت فوش خوردن داشته باشه بعضیا تا کج نگاه کردید چهار شب خوابشو نمیبره خیلی ضعیفه به چه معنی؟ یعنی گرفتار منیت هست گرفتار توجه به خویشتن است به این میزان که این کیفیت برخورده با من برای من این جمله رو حتی بعضی افراط میکنن که اونو قبول نداریم افراد میکنن برای اینکه در این مسیر به یک رشدی برسند خودشونو در معرض برخی اتهامات قرار میدهند تا از بس این اتهامات رو به اونها وارد میکنن مثل ملامتیان زمینه بیتفاوتی نسبت به آنچه که دیگران میخوان در حق او روابه دارن پیدا کنند، ولی نه در معیار شهر میگه از طریق صحیبی اینجا باد برسیم